افسان برنابی از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدایی که افسانه و حقیقت را فرید سلام افسانه های هر سرزمین حکایت های ساده، روان و زیبا هستند که از دیرباز مردمان هر سرزمین با اونها معنوسند و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا میکنند و همچنان ماندگارند این بار در برنامه هزار افسان به سرزمین کره سفر می‌کنیم و افسانه‌ای را از مردمان این سرزمین براتون نقل می‌کنیم به نام افسانه کنجی و پاجی برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم کره اثر پیتر هویون با ترجمه از ارفان حسین حسینزاده. کنجی دختری بود که با نامادریش زندگی میکرد نامادریش دختری به نام پجی داشت کنجی دختری دوست داشتنی و زیبا بود و همه اونو دوست داشتن اما مادر و خواهر ناتنیش از وقتی که پدر کنجی مرده بود اونو عذیت میکردن و نمیذاشتن آب خوش از گلوش پایین پره مادر پاجی با دقت و حوصله از دخترش مراقبت می‌کرد و به اون می‌رسید تا اون بهتر از کنجی جلوه کنه اما پاجی زشت بود و صورتی آبل رو داشت روزی نامادری یه بیل واقعی به دخترش و یه بیل چوبی به کنجی داد و اونها رو برای وجین کردن محصول فرستاد نامادری مزرعه ذرت رو که آسون و راحت بود به دخترش پاجی و مزرعی پر از الف رو به کنجی سپرد و گفت زود باشین، زود باشین شروع کنین، یادتون باشه اون کسی که کار رو دیرتر تموم کنه، تنبیه میشه کنجی خوب میدونست که این فقط یه نقشه برای تنبیه اونه ولی چاره ای نداشت، بنابراین بر شروع کرد به کار و تلاش اما در همون ابتدای کار بیل شکست کنجی از شدت ناراحتی شروع کرد به گریه کردن. و با صدای بلند آرزو کرد که یا مادر مردش اونو پیش خودش ببره یا اگه اون سزاوار این گونه رفتار زشت و بده ببری از راه برسه و اونو بخوره و به زندگیش پایان بده در این موقع کنجی حضور قریبه ای رو حس کرد چشاش رو باز کرد و در مقابلش گاو سیاهی رو دید که به اون نزدیک و نزدیک تر میشد. گاو با مهربونی از کنجی دلجویی کرد. کنجی احساس خوشحالی و آرامش کرد. گاو با حرکات حیرت انگیز و سریع پاها و شاخ وقتی دندوناش به سرعت کار وجین کردن مزرعه رو تموم کرد، چند ساعت بعد نامادری برای سرکشی به مزرعه اومد و با کمال تعجب دید که مزرعه وجین شده. با تعجب به کنجی نگاهی انداخت و گفت تو تو ها. تو چجوری تمام این مزرعه رو وجین کردی ها اه، این کار سختیه و کنجی فقط لبخند زد و گفت بله کار سختی بود ولی خب من از عهدهٔ بر برومدم نامادری در حالی که سخت عصبانی شده بود به خونه برگشت و به فکر نقشه دی‌ای برای تنبیه کنجی افتاد شب از راه رسید و این بار نامادری قصد داشت دخترش پاجی رو به جشن تولد ببره اون کنجی بیچاره رو مجبور کرد تا یه حفره و یه دیگ بزرگ رو که ته هر دوی اونها سوراخ بود پر از آب کنه در غیر این صورت تنبیه میشه کنجی بیچاره بعد از ساعتها و بارها تلاش نتونست ها رو پر از آب کنه و شدت ناراحتی به گریه افتاد در این موقع دو تا قورباغه سبز بزرگ ظاهر شدند و هر کدوم به داخل خمره و دیگ رفتن. کنجی که با دیدن ها امیدوار شده بود با خوشحالی دوباره شروع کرد به پر کردن زرفا و این بار هم موفق شد. بعد وقتی نامادری و دخترش پاجی از مهمونی برگشتن فکر کردند که کنجی افسانه ما نتونسته زرفا رو از آب پر کنه و باید تنبیه بشه. اما با تحجب دیدن که کنجی ظرف رو پر از آب کرده اونا در حالی که سعی میکردن تعجب خودشون رو پنهون کنن با خونسردی گفتن خب کار سختی نبود هر آدم احمقی میتونه این کار رو انجام بده کنجی چیزی نگفت و نامادری و دخترش پاجی به این فکر کردن که باید بله نخشی دیگهی برای آزار و اذیت کنجی بیچاره تر مدتی گذشت تا اینکه نامادری و دخترش پاجی به یه مراسم با عروسی دعوت شدن. اونا در حالی که بهترین لباسهاشون رو پوشیده بودن سوار بر تخت روانی شدن و به عروسی رفتن. اما اونو مجبور به انجام کار سخت دیگه ای کردن. حتما انان میپرسین چه کاری ها؟ براتون تعریف میکنم. بله، اونا کنجی رو مجبور به خوش کردن و پوس کندن مقدار زیادی دونه برنج کردن. اونم کاری که یه هفته طول میکشید تا انجام بگیره. اونا برای اینکه کنجی رو تشویق کنن به اون گفتن اگه کارت رو زود انجام بدی میتونی به عروسی بیای و حسابی خوش بگذرونی. بعد قهقه قه خندیدن. کنجی با نارتی دونه برنج رو روی حسیرهای های پوشاری پنگ کرد تا اونا رو خوش کنه اما دسته گنجشک رو روی برنج دید که فرود اومدن کنجی که نگران خراب شدن برنج بود با ناراحتی فریاد زد زود از اینجا برین خواهش میکنم زود از اینجا برین. اما گنجشک ها نپریدن کنجی دوباره فریاد زد با شمام با شمام زود از اینجا برین. کنجی جلوتر رفت و ببینی که گنجشکا چیکار کار میکنن و با کمال و دید که گنجشکا حتی به یه دونه برنج هم دست نزدن و فقط با بالهاشون شروع کردن به خوش کردن برنج ها بعد هم با نوکای تیزشون دونه های برنج رو پوست کندن کنجی با خوشحالی فریاد زد متشکرم متشکرم گنجشکای مهربون متشکرم متشکرم و به این ترتیب کار خوش کردن و پوسکندن برنج ها خیلی زود تموم شد و کنجی فوراً برنج ها رو به کیسه برگردوند و باز هم از گنجشکا تشکر کرد حالا که کار کردن و پوسکندن برنج تموم شده بود کنجی یاد جشن عروسی افتاد اما چطوری میتونست به اون جشن باشکوه بره؟ ها؟ نه لباس مناسب و زیبایی داشت و نه کسی بود که براش تخت روان و خدمتکار حاضر کنه کنجی با حسرت و افسوس گوشه نشست و توی رویا جشن عروسی فروره در این موقع، گاو سیاهی در مقابلش ظاهر شد. کنجی با وحشت از جا بلند شد و خواست فرار کنه. اما گاوه سیاه گفت، نترس دختر جان، نترس. من اومدم که بهت کمک کنم. کنجی با تحجب پرسید، کمک؟ چه کمکی؟ گاو سیاه گفت، فقط کافیه هر آرزوی داری بگی. اون وقت من اونو برات برآورده می کنجی با هیجان و خوشحالی گفت واقعا این خیلی خوبه ولی ولی چجوری؟ گاو سیاه گفت دستات رو نزدیک که بدن من بگیر و هر آرزویی که داری بگو کنجی با هیجان گفت من من من دلم میخواد لباس زیبایی بپوشم و چند خدمتکار با یه تخت روون بیان و منو به جشن عروسی ببرن و اونجا هنوز حرفه کنجی تموم نشده بود که یه دست لباس زیبا یه جفت کفش با پاشنهای طلایی و یه تاج نغرهی در مقابل کنجی افسانه ما ظاهر شد بعد هم تخت روانی به همراه چهار خدمتکار با دو کنیز زیبا رو آماده بردن کنجی به جشن عروسی شدن خلاصه همه چیز مرتب و تمیز و مناسب یه شاهزاده خانم بود. کنجی مثل یه شاهزاد خانم با وقار و زیبا، وارد جشن عروسی شد با ورود اون به مجلس عروسی سکوت سنگینی بر مجلس حاکم شد همه زیر لب از هم می پرسیدن این شاهزاده خانم سیبا از کجا آمده؟ تو میدونی دونین کیه؟ نامادری و دخترش فوراً کنجی رو شناختن و از اومدن کنجی به مجلس عروسی اونم درست مثل شاهزاده خانم واقعی سخت تعجب کردن اما سکوت کردن و چیزی نگفتن انگار که اصلا کنجی و اولین باره که میبینند و اونو نمیشناسن. خلاصه همه مبهوت زیبایی و وقار کنجی شده بودند از خوشانسی کنجی حاکم شهر که جوون برازنده و زیبایی بود در اون جشن حضور داشت و از لحظه ورود کنجی به مجلس یک دل نه صد دل آشق کنجی شد و تصمیم گرفت کنجی افثانه ما رو به عنوان همسر انتخاب کنه. بنابراین در یه فرصت مناسب به کنجی نزدیک شد و ازش خواستگاری کرد. اما کنجی خودش رو شایسته همسری حاکم جوون نمی دونست و صادقانه به حاکم جوون گفت قربان اشتباه نکنین من نه شاهزادم و نه اشرافزاده من من فقط یه دختر معمولی هم که حتی سواد خوندن و نوشتن ساده رو هم ندارم نه نه من من شایسته و برازنده همسری یه حاکم جوونی مثل شما نیستم وربان اما صداقت و راستگویی کنجی باعث شد که حاکم جوون به اون بیشتر علاق من بشه بنابراین به کنجی گفت دختر جوون تو فقط میتونی منو خوشبخت کنی تو؟ مهم نیست که شاهزاده نیستی و سواد خوندن رو نوشتن نداری. مهم اینی که تو دختر راستگو و با صداقتی هستی. این برام مهمه. خلاصه. حاکم جوون اونقدر به کنجی اظهار علاقه نشون داد که بالاخره کنجی افثانه ما پذیرفت که به همسری حاکم شهر در بیاد و فردای اون روز جشن عروسی باشکوهی برگزار شد و کنجی به خونه بخت رفت در حالی که نامادریش و خواهرخونده‌اش از این موضوع سخت ناراحت بودند و حسادت تمام وجودشون رو پر کرده بود. مدتی از ازدواج کنجی و حاکم جوون شهر گذشت. بالاخره نامادری و دخترش پاجی طاقت نیوردن و نخشهی کشیدن تا کنجی رو سربه نیست کنن و پاجی زن حاکم شهر بشه. برای همین هم روزی پاجی طبق نخشهی که با مادرش کشیده بود پیش کنجی رفت و به خاطر اشتباه های خودش و مادرش اصتخایی کرد و از کنجی خواهش کرد تا اون رو ببخشه. کنجی هم که دختر مهربون و ساده دلی بود اونا را بخشید و بر اینکه نشون بده هیچ کینه ای از اونها به دل نداره با خوشحالی خونه و کموتهای پر از لباسهای ابریشمی و و زربافت خودش رو به خواهر خوندش پاجی نشون داد و گفت خواهر جون تو, تو میتونی هر کدوم از این لباسها رو که دوست داری برای خودت برداری این لباسها خیلی قشنگن دلت می‌خواد بردار و پاجی هم فوراً چند دست لباس ابریشمی برداشت و بعد با هم به باغ قص رفتن و اونجا بود که کنجی گل لوتوس یا همون نیلوفری رو کمسرش یعنی حاکم شر خیلی دوست داشت به پاجی نشون داد. پاجی هم از فرصت استفاده کرد و با لحن خواهش آمیزی گفت خوهر عزیزم من خیلی درم میخواد توی این برکه کمی شنا کنم خواهش میکنم اجازه بده چند دقیقه ای توی این برکه زلال شنا کنم اصلا تو هم با من بیا و هر دو یه کمی بازی کنیم خواهش میکنم خواهر عزیزم بیا کنجی لبخندی زد و گفت باشه باشه چند دقیقه ای توی برک عبازی میکنیم و بعد به قصد میریم و نهار رو با هم میخوریم اونا وقتی به وسط برک رسیدن یه پاجی با بدجنسی تموم سر کنجی رو زیر آب فرو برد و اونو به ته برکه فرستاد بعد به سرعت از برک بیرون اومد و لباس کنجی رو تنش کرد و نقابی به صورتش زد و خودش رو به جای کنجی جازد و توی رخت خوابون خوابید و در حالی که ناله می کرد به خدمتکارها گفت وای وای حالم خیلی بده هیچکس کس مزاحم استراحت من نشه. حسره هیچ کی رو ندارم. آه، فکر میکنم بیماری سختی گرفتم که مصری باشه. به همسرم حاکم جوون بگی تا چند مدتی بدید. من نه، تا حالم خوب بشه. دوست ندارم همسرم منو با این قیافه دار و بیمار ببینه. آه. خدمتکارها هم فورا پیام پاجی رو که فکر میکردن، کنجی همسر حاکم جوونه به همسرش رسوندن و حاکم هم که فکر میکرد همسرش کنجی بیمار شده به خدمتکارها دستور داد که مراقب اون باشند و هرچی میخواد براش آماده کنن. در یه ظهر گرم حاکم جوون به برکه رفت و کمی شنا کنه و اونجا بود که متوجه گل نیلوفر زیبایی شد گل نیلوفر انگار داشت به حاکم جوون اشاره میکرد. حاکم با دیدن زیبایی گل به یاد زیبایی همسرش کنجی افتاد و تصمیم گرفت گل نیلوفر رو برای همسر بیمارش ببره بنما دین دستور داد گل رو بچینن و اون رو در گلدانی کنار تخت همسرش بذارن و اما بشنوید از پاجی که خودش رو به جای کنجی همسر حاکم جوون جازده بود بله پاجی صبح روز بعد از خواب که بیدار شد روح کنجی رو توی گلدون با گل نیلوفرتی اون با عصبانیت و کمی وحشت به خدمتکارها دستور داد تا گل نیلوفر رو داخل شومینه بندازن. فردای اون روز پیرزنی که در اون نزدیکی زندگی میکرد مثل همیشه برای بردن زغال به آشپزخانه حاکم رفت. اما به جای زغال مهرهایی رو پیدا کرد که به نظرش زیبا بودن. بنابراین اونا رو برداشت و با خودش برد و داخل قفصه خونش گذاشت. پیرزن بعد از مدتی از داخل قفسه صدایی شنید. انگار کسی اسمش رو صدا می زد. پیرزن ترسید و در قفسه رو باز کرد و روح کنجی رو دید که اونجا نشسته. پیرزن خواست فریاد بزنه و از اونجا فرار کنه که روح کنجی به صدا در اومد و گفت صبر کن، نترس، من خواهشی از تو دارم. پیرزن آرون گفت خواهش؟ چه, چه خواهشی؟ آه چه خواهشی؟ کنجی جواب داد خواهش میکنم هرون چرا که از زبان من میشنبی برای همسرم حاکم جوان بازگو کن و بعد داستان خودش رو برای پیرزن تعریف کرد و از بدجنسی نامادری و دخترش پاجی گفت و اینکه چجوری پاجی اونو توی برک غرق کرده و خودش رو به جای اون در بستر بیماری انداخت میریزن که شنیدن این و سخت کمگین شده بود به کنجی قول داد که همه چیز رو برای حاکم تعریف کنه و همین کار رو هم کرد و پاداش خوبیم از حاکم دریافت. و ما حاکم جوان وقتی به ماجرای همسرش پی برد فورا دستور داد برکه رو خالی کنند و خدمتکارها کنجی رو در حالی که در ته برکه روی تختی از گل‌های نیلوفر خوابیده بود پیدا کرد اون مثل همیشه آروم و زیبا بود حاکم در حالی که سخت ناراحت و اندوهگین بود دستور داد فورا پاجی و مادرش را از دهکده بیرون کنند بعد برای کنجی مراسم تشی با شکوهی برگزار کرد در این موقع کنجی که در میون حلقههایی از گل نیلوفر به خواب ابدی فرو رفته بود نفس عمیقی کشید و به زندگی برگشت و از اون روز به بعد شهرت کنجی مثل عطر گل نیلوفر همه جا پراکنده شد و پاکدامنی کنجی تا به امروز در یاد مردمان سرزمین کره باقی مونده افسانه کنجی و پاجی رو از مردمان سرزمین کره براتون نقل کردم برگرفت از کتاب افسانه های مردم کره از سر پیتر هویان با ترجمه از عرفان حسین زده افسانه ها بخشی از میراث فرهنگی هر ملتی به شمار میرن و در اونها عرضش های سنتی پس زمینه های فرهنگی و روانشناختی هر قوم نمود داره امیدواریم این و ها از اونها باشن و نسل ها از اونها و پاستارین گنجینه ارزشمند ادبیات آمیانه باشد هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور. ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صداوردار الهام موسوی زفر تیه کننده زهرا عبدالله زاده سانه دیگر بدرود.